آزری گفت، اگر اصل من تو را می من به تو اعتماد می کنم. او را بردار و ببر، مادر ندارد، یک برادر کوچک دارد که در پایتخت است، دو عمو دارد که هر دو در زندانند، یک گورستان هم خیشان مؤمن دارد، دیگر به جز من، هیچ کس را ندارد، و من جز او، هیچ چیز ندارم آزری تنومند نشست و گریست. سه روز بعد از نخستین دیدار من و تو بود نه دو روز فقط دو روز روز سوم تو به زانو در آمده بودی عشق رحم ندارد و تو عاشق شده بودی تو می نشستی کنار آتش و فقط به من نگاه می کردی من سر رو افکندم تا نتوانی آن چشمان سیاه سیاه را تصرف کنی و تو شب روز دوم گریان گفتی قلبم را که دزدیدی دست کم نگاهت را ندوست بگذار در این دریای سیاه قایق این گیلک آرام پاروزنان بگردد پدر میگوید یک طبقه کوچک لاهیجان رشت یا تهران فرقی نمی کند هدیه من به شماست و قدری سرمایه برای آسوده‌زیستان چرف ها میزنید دختر مگر می شود بنای کوچک خوشبختی را با خشت های خام اعان برپا کرد و به فرو نریختنش ایمان داشت با حقوق دبیری با عرق جانان ریختن برای او که میخواهد خواهد کار کند هرگز قهد کار نبوده است ما باید زودتر راه بیافتیم مثل نگرانم آنجا در ولایت من من با یک گروه کوچک جنگلی کار میکنم که هنوز یک قدم هم به جانب جنگل برنداشته است پس ما عروسی نمی کنیم. جشن اعدام برپا می کنیم به خاطر عروسی های بسیاری که عاشقان دیگر با آسودگی خاطر به پا خواهند کرد شاید لبخند بزن دختر آن گنجه اشکار را نگاه کن و لبخند بزن این عکس صدها سال خواهد ماند آشق، ترک لبخند نمی کند اصل لبخند تزهیب زندگی است و بوسه است بر دستهای نرم محبت با لبخندهای کوتاه، گهگاه، این مرسع زرنگار را شفافی ببخش بانوی آزری من گیل مرد کوچک اندام و بانوی آذریش تنگ هم از سوالان پدر به انزلی رفتند که گیل مرد در آنجا درس میداد. اما اصلش از لاهیجان بود. در انزلی گیل مرد یک اتاقک داشت. صاحبخانه و پیوستگانش او را میخواستند. من آمدم با همسرم. این است: اصل: مبارک است. به چشم پدری خورشید را سرقت کرده ای مرد دیگرم ما یک اتاق برایتان کم است رفت و آمد دارید دو تا آن طرف حیات بسازم برایتان تمیز برای خودت و این این به چشم پدری کندو که با خودت آورده ای می بخشید اما خانم من همیشه می گفت هیچ کس به این گیلک یاغی خاموش افتاده زن نمی داد زن بردن این روزها جرأت می و این گیلک افتاده هیچ چیز به جزی یک قفص کتاب و یک سر دردمند ندارد حالا باید بیاید و ببیند که چه جرأتی نشان داده که به چشم پدری باغ را به باغچه ما آورده به چشم پدری اصل می خندد چشم آن کس که می بیند مهم نیست پدر روح آن کس که دیده می شود مهم است همه کس را که نمی واداشت به چشم پدری یا مادری نگاه کنند اما خورشید، اگر واقعا خورشید باشد همه ی خیر چشمان بدنگاه را کور می کند پدر عجب عجب نکند این باغ هم یک یاغی خیر سر است؟ یاغی اینطور حرف میزنند. یاغیست پدر. خوب دیدی. اگر اصل دو اتاقه میخواهد بساز با آشپزخانه و چیزهای دیگر. آنجا پشت آن درختان نارنگی. چشم؟ چشم چیزهای دیگر که معلوم است میسازم پسر جان، گفتن ندارد. بدون چیزهای دیگر که فدایت شوم خانه خانه نمی شود. آشق جدیست اما عبوس نیست اصل افسرده گفت زندگی من به زندگی عاشقان نمیماند. تمامش شده به سردویدن و نرسیدن استراب و انتظار گیده مرد آرام جواب داد بانوی آزری من ما بیش از آن متعلق به عصر خیشتنیم که بتوانیم نقش لیلی و مجنون اوتلو و دزد مونا شیرین و فرهاد رومئو و ژولیت را بازی کنیم نقش ما را ما بر پیشانی خیش نوشتیم حک کردیم